اعلم یا بنای ان امام که را مسافت بعیده و مشقت شدیده لا غناب کفیه انحسن الارتیاد و قدر بلاغ من الذات مع ما خفت مرمد پسرم بدونی که در پیش روی تو یک سفر پر پرمشقت و دور و درازی هست اما که طریقا زا مسافتن بعیده راه خیلی طولانی در پیش داری و مشقتن شدیده راهی هم هست که خیلی هم سخت به داره زحمت داره بایستی خود رو مهیا کنی برای این سفر چاره ای غیر از مهیا کردن نداری و بایستی که قدربلاغ کمین از زاد زاد خودت رو مهیا کنی به مقداری که تو به مقصد برسونه زادت رو مهیا کن خود رو مهیا برای این سفر کن زاد و راهله سفر رو مهیا کن بارتم کم کن ما خفت زهر بارت کم باشه لا تحملن نعلا زهر که فوق طاقتت فیکون ثقل زالک و بالن علی بارت سنگین نباشه کسی که به تعبیر بنده از گردنه میخواد بره بالا اگه بارش سنگین باشه این وسط ها از نفس میفته و میمونه بارتو سبک کن زاد و راهله زیاد تهیه کن و بارت رو هم سبک کن این جمله امیر ممونیم. سلام و علیه در این نامه اما سختی این سفر که دیگر واضح و آشکار از آیات شریفه قرآن و روایات الاماشا اول بسم الله این سفر مرک شروع میشه. اول بسم الله شید. اول بسم پکیف اذاعت وصف هم ملاع، ای که تو یاد برو نو وجود هم و ادباره، یه سفری، یه دیرو، حال کفاران یا غیر کفاران، خدا تو قرآن معرفی میکنه، این ملاع این میان برای جان قبض جانشون رو رو قبض روحشون کنن، باد هزیانها یا با وسوال دیگری. صورت ها و پشت های این ها را می زند آیه و کیف اقای قرآن ها و کیف اذا توفد همون ملائک توی از ربون و ادباب. معنی و ادبار ها معمین المومنین یکسی ارز شد یعنی صف لمن الموت موت رو برای ما توصیف کن فرمود علالخبیره سقطتون وارد شدید بر یه شخص دانهایی که خوب میتونه براتون شرح بده حقه احد امور سلاسه سه چیزه اما بشارتون به نعیم العبد تا میخواید بمیری بشارت نعمت دائمی و همیشگی. گی بازم آیه الذين توفوه الملائكة ترحبين يقولون السلام عليكم كيف كنتم بعمل ذالك ملائكهن سلام كنند و بهنها تحيات لهم بشاره في الحياه الدنيا و في الاخره هم جم بشارت و, بالنعيم و اما بشارتون بنعيم العباد و اما بشارتون بعذاب العباد این هم دسته دوبون و دسته سوم و اما تحذیلون و تحویلون و امرهون مبهم خزن است و اضطراب است و ناراحتی زیرا که وضعش نامعلومه که چی این هم دسته سوم، و تحویلون و امره مبهم لا یدرین من ایل فرق یکون جز به کدون دسته خواهد شد فرمود و اما ولیان المطی اما دوست و شیعه ما که مطیق خدای تعالی باشد فهوال مبشر به نعیم العبد او به بشارت به نعیم عبد میدن نه فقط ملائک بشارت میدن خود رسول الله صلی اللہ و خود عمیم و مومین سلام و علیه خدا به تحبیر بنده نترسی تمام شد زحمت ها بشارت می و اما اون که به عذاب عبد میدن فوق و عدو بنا. دشمنان ما به عذاب عبد به اونها بشارت می و اما مبهم اللذی لا یدرا هو مؤمن المصرف اون دوستان ما که اصراف کردند گناه کردند اینا وضعشون مبهمه همش با اضطراب و ناراحتی و حول و حراس برخورد دارند ونحرتمیرم ولکن یخرجه من نار خدای تعالی هر رو بالاخره از آتش خارج میکنه به شفاعت ما ولی پشت سرش امیر المؤمنین میفرماد فعملو و او، و لا تستسغرعو و تبد بکن گناه رو کوچک نشمرید اطاعت کنید بندگی کنید و من المصرفین بعضی از بندگان مصرف خدا لا یلحقه شفاعتنا الا بعد از معت الف سنه بعضی از خود دوستان ما که خیلی گناهشون سنگینه بعد از سد سال از شفاعت ما شاملشون این اول بسم الله بشارت هایی که اول بسم الله با آدم میدم از این به این که توی داره به اینکه که بندی آخه توی روایت داره که بندگان مؤمن خدا همه با هم دیگه داره هم جمعن در عالم برزخ با هم جمعن با هم محنوزن آشنها رفیقاق و مخیشا با هم در آلم برزخ با هم جمعن یه کسی که تازه وارد میشه و میره پله اونا آدم خوباست میخوان باهاش حرف بزنن دیگران میگن بابا این صبر کنی این از یه سفر خیلی سختی اومده یه خورده خستگیش به تغییر ما در بره خورده صبر کنید بعدا ازش میپرسن فلان کس چطور شد فلان کس چطور شد خب دوستان و ها رو احوالش از این بنده خدای تازه وارد میپرسن اگه بگن هنوز زنده است بگه زنده است خوب انشاءالله می دواریم که بیاد ما، اگه بگن مرده و نیمده نهید پلونا همشون با هم دیگه می هوا هوا حلاک شد حلاک شد بنابراین یه سفر سختی است اغنی شد این که بله بسم الله شد دیگه روایات قبر و برزخ و اینقدر سخته و همون ای که رو داشته باشه از نامه یا که امیر المومنی سلام الله علی برای محمد ابن عبی بکر نوشته است اون نامه رو بخونه که فرمد و ما بعد الموت اشب لمن لم یغفر الله له کسی که خدا رو نیاموزه قبر خیلی سختتر از مرگه این شریف من اعزم شدی فننلهو معیشتن زنکا در روایات وارد شده که عنوان عذاب قبر زندگی ال القبر روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران یه سراخه از های جهنم یا بیگتری از درهای بهشته برم این قد الان روایات دیگه حساب آمد که بخون آیات و روایات را تو هیچ از یادم گاهی اکبرت کردم هیچ دادگاهی تو دادگاه های دنیا با فکر و با خیال و با تصمیم و با اراده آدمو محاکمه نمو کنم این خیال کردی تو که ذهنه ولی در توم حساب میگیرن از افکار و از تصمیم ها و از فکره و از اعتراد ها و منصاب داره. این ما فی مافی او تو سکم اواتخفو هیچ پرونده تو دادگاه هیچ کجای دنیا پیدا ایران نمی کنی کهیه کسی بیاد تواضا کنه. و شکایت کنه از یه کسی بگه این بنده خدا اومده یه دینه چوب کبیت سوخته از من ورداشته ولی در قیامات صابق میگیرم چوب کبیت سوخته مردم چرا ورداشته بنده خدایی که نهار کردم گاهی که عالمی بود شاید از دنیا رفته بود شاگرد داشت گفت خیلی آرزو کشیدم که این پهیم استادم رو در خواب ببینم ببینم, ببینم وضعش جوره یک سال طول کشیدیه شد دو سال یا یک سال حالا یک سال طول کشیدیه شد خوابش رو دیدم و از اوزا پرسیدم و گفتم جوره وضع گفت یه سال من مردم هنوز یه حساب مختصری داشتم هنوز درست تصویه نشده به قول من اون حساب چی بوده؟ گفت رفته بودم و جای عبور میکردم یه بنده خدایی کوله خاری از بیابون کنده بود یه جا گذاشته بود من یه دنه اینقدی کندم که با این خلال کنم یادم افتاد و متوجه شدم که مال غیر انداختم و خلال نکردم این یه ساله هنوز من رو دارم میکنم به او. این حساب سخته اون معام که اغبتم ول طریقم زامسا و بعیده خیلی مسافتش سخته خیلی حسابش سخته خیلی دقیقه و بنابراین باید خودتون مهیا کنی برای حساب زاد تهیه کنی راهله تهیه کنی برای این سفر کذای زاد راهلهش چیه ان خیر زاد التقوا فتقوم یا ان الالباء بهترین زاد تقوا قرآن فرمایاد ان خیر الزاد تقوا فتقون يا اول الالبى من احب أن يخفف الله تعالى عليه سكرات الموت فليكون لقربته وسولا و لوالدايه بارا اگر کسی دوست دارد که مرگ و جان کندن بر او آسان باشد سله رحم بکند و به پدر و مادر نیکی بکند زاکان کذالک حوَن الله علیه سکرات الموت و لم یوسف فی حیاتی فقر ابدا اگر سله رحم کند و به پدر و مادر نیکی کند سکرات مرگ او آسان می شود تو دنیا هم فقیر نمی شود. پس این راهو رو باید من خودم تهیه کنم زادش رو زادش رو اینجا این معرفی کرد عدیزر سلام الله علیه وارد مسجد الحرام شد مردم نشسته بودند صدا زد ایوه من جندب ابن شاید جنابت ابن جندب یا جندب ابن جنابه هستم من عبیزر قفاری هستم تا مردم فهمیدن عبیزر جمع شدن دور روح ایوه ناس اگه شما یه سفری میخوان بریم یه زاد و راهلی برای سفرتون تهیه نمی کنی. یه سفر دو فرسخی میخوای بری پنج فرسخی میخوای بری. یه سفر نونی یه مستلم فرض کنی آبی چیزی بر نمیداری ببری گفتن چرا فرمود سفر آخرت زاد و راهله لازم نداره یکی گفت عرشد یا عبازه راهشو به ما نشون بده که زاد و راهله این سفر چی؟ فرمود سل فی ظلمت اللیل فی سواد اللیل رکعتن وحشت القبر در تاریکی شب بلند دو درکت نماز بکن برای وحشت قبر نوفه سم فی یوم شدید در یه روز هوای گرم یه روزه مستحبی یه روز بگیر برای در روز سهرای قیامت و اون هوای گرم کذایی نافع حج حجتان لعظا این امور حج واجب یا یه حج مستحبی برو حج برای بزرگ ها کارهای بزرگ و پیشامتهای بزرگ نافع اجعله دنیا کلمتین تمام حرف دنیا رو دو کلمه قرار بده کلمتون فی طلب الحلال و کلمتون للاخره یک کلمت این باشه که برای دست آوردن رزق حلال حرف بزن. حرف بزن و اگر حرف دوبون میخوای بزنی حرفت برای آخرت باشه ذکری بگو، قرآنی بکن، دعایی بکن، مناجاتی بکن، ارشادی بکن، امره به معروفی بکن، نهی ازینکری بکن یه چیزی که به درد آخرتت میخوره دو کلمه بگو کلمتون فی طلب الحلال و کلمتون دل آخره و سال هزار و بالا بلا تنفای رو نگو که برات تزرد داره و دنیا درهمین تمام دنیا رو دو درهم هم بده در همون انفق توه الا, الا ایالک یک در همش رو کن برای زن و بچه و زندگیت و در هم قدم توه لآخرتک یه در همدیش رو بفرست جلو برای آخرت و سالس و رو ولا یمفر اینا رو داره زاد آخرت برمو معیم میکنه زاد آخرت به معیم میکنه فرمید هم میگونیم پسرم سفری طولانی در پیش داریم و باید زادی مهیا کنیم و بارتم سبب کنیم گناهانو کم کن وزرو و بالا رو از دوش خودت بریز حق الناس ناس به خصوص کنش کن و سعی کن گرفتار حق و ناس نباش. تمام شد مثل این که عرایز ما البته روایات شاید متعدد داشته باشیم که تمام شد حالا اونی که میخواستم عرض کنم خودم پیدا کرد بله فرمود این حضر صادم فرمات خم فی ظلمت اللی اجال قبر که روزتن من ریاض الجنه در شب تاریک برخی قبل تو را من بالا با بهشت با قرار کنم چون ماه رجب وقت این کاره شب می رجبم هم هز آهره نمیشه خوش آلو اونهایی که حال داشته. باشه یا آقای که از بزرگان رفت. رفتش به اینکه که مهر وقت این دعایه چون داره در روایات که از شب اول رجب که میشه یعنی است به نام دعایی اسمش دعوت کننده است تا صبح شاید از اول شب تا صبح سلام میزند مندالله تبارکه و تعالیه قول از شهر و شهری والعبد و عبدی و رحمت و رحمتی این ماه ماه من است و این بنده بنده من است و رحمت رحمت من است تو با لعبد جالس هنی تو با لعبد زکر هنی انا جلیس و من جالس هنی و من زکر انی. حبیب من احبنی مطیع من عطا این آقا میگفت هر وقت نمیخونم خجالت میکشم خب آیت حالا می و من عطاق من جلیس و من جالسنی ذاکر و من ذکر حبیب و من عفت نی موتی و بنابراین وقتش این ماه وقتش ماه رجب و شعبان و و زاد آخرت رو باید همین من به عمل خودم تهیه کنم اینه توشه راه اینه و ما بر که فرمان زاد تهیه بکن که سفرت بسیار سخت است و زاد و راهلش البته اینا سوایات زیاد داریم زاد تو قبر چه چیزهایی برای قبر نفع چه برای قبض روح نفع چه چیزهایی برای جواب سآل منکر و نکیر نفع این را با گرفتن پیروش کرد. ازش می‌شه و سلام الله و که حضرت رضا صلّى الله علیه گفتش اکبر فضیلتی. از می‌شه صفحه 258 جلد سی پنج بهار جدید دویست و پنجا و جلد سی و پنج اون روایت دیگر دلیل علا خلافت جدک به نظرم از در کتاب ایون اخبار و رضا موجود باشه ولیکن منده از روی تفسیر المیزان نوشتم صفحه 252 جلد 3 تفسیر المیزان این اون دو تا روایت مربوط به اونجا و اما روایت دیگر که فرمود ال الخبیر سقطتم صفحه 154 جلد 6 بهاره جدید دیگه چی بود آن؟ من نیخفید بلا آن؟ من احب من الله تعالی خونصد و پنجاه جلد دو سفینه قضیه عدیزه چارصد و چهل جلد بهار جلد 19 ظلمت اللیل صفه 46 جلد دو سفینه تمام فضیعته. اللهم الله